رابطه های مبتنی بر عشق یا نفرت اگر به فرکانس آگاهی لحظه حال دست نیابی همه رابطه های تو مختل خواهد شد ممکن است این رابطه‌ها برای مدت زمانی کوتاه بی عیب و نقص به نظر برسند مانند زمانی که در متن رابطه عاشقانه قرار داری اما این بی عیب و نقصی ظاهری خیلی زود به جر و بحث، نزاع، نارضایتی و خشونت عاطفی و حتی فیزیکی می‌کشد به نظر می‌رسد که بسیاری از رابطه‌های عاشقانه خیلی زود به رابطه های مبتنی بر عشق نفرت تبدیل می شوند آنگاه عشق در چشم برهم زدنی رنگ خصومت و حمله به خود می گیرد آنگاه رابطه برای مدتی مثلا چند ماه و یا چند سال بین دو قطب عشق و نفرت در رفت آمد خواهد بود بنابراین این رابطه هم لذت بخش خواهد شد و هم دردناک البته زوجها به این چرخهٔ ای عشق نفرت عادت می‌کنند. غم و درد آنها به زندگیشان نوعی معنا میبخشد وقتی تعادل قطبهای مثبت و منفی به هم میخورد و قطب ویرانگر منفی کاملا بر زندگی چیره شود که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد آنگاه رابطه به کلی فرو می‌ریزد. ممکن است گمان کنی که اگر بتوانی قطب منفی را از زندگی خود حذف کنی آنگاه همه چیز بر وفق مراد خواهد شد و رابطه زیبا و شکوفا خواهی داشت اما متاسفانه ممکن نیست این قطب ها به هم مربوطند هم بستند نمیتوانی یکی از قطب ها را بدون دیگری داشته باشی قطب مثبت رابطه پیشاپیش قطب منفی را نیز در دل خود نهفته دارد هر دوی این قطب در دو روی یک سکند. البته سخن من درباره رابطه‌های رابطه های به اصطلاح رومانتیک است. سخن من درباره عشق‌های حقیقی که قطب متضاد ندارند نیست. حقیقی عشق حقیقی ورای ذهن می عشق حقیقی همچون آدم آگاه بسیار کمیاب است. وقتی شکافی در هجاب ذهن رخ میدهت درخشش عشق حقیقی را میتوان مشاهده کرد البته روی منفی یک رابطه را راحت تر از روی مثبت آن میتوان تشخیص داد و نیز منبع منفیگرایی را در یار خود راحت تر تشخیص میدهی تا در خود منفیگرایی در شکل های گوناگون خود را نشان میدهت میل به تملک حسادت کنترل بیزاری میل به برحق بودن، بی خودخواهی به بازی گرفتن های عاطفی میل به جدل، انتقاد، قضاوت، سرزنش، حمله خشم، میل به انتقام گرفتن، اعمال خشونت فیزیکی. در روی مثبت تو عاشق یار خود هستی. این حالتی است که کاملا تو را ارضا می کند. به تو احساس زنده بودن میدهد. ناگهان وجود تو معنا می‌یابد زیرا کسی به تو نیاز دارد تو را میخواهد به تو احساس مهم بودن می‌بخشد و تو نیز برای او همین نقش را ایفا می‌کنیم وقتی با هم هستید احساس می‌کنید کامل شدید این احساس ممکن است چنان شدید باشد که همه دنیا پیش چشمان شما محو شود با وجود این ممکن است دیده باشید که در این رابطه نیاز و چسبیدن هم هست هر یک از شما به دیگری معتاد شده است دیگری نقش مواد مخدر را ایفا می کند. وقتی دیگری مواد هست تو هم احساس خوبی داری اما امکان یا فکر این که ممکن است روزی او در کنار یا مال تو نباشد موجب برانگیختن حس حسادت تملک حق سکوت گرفتن های عاطفی سرزنش اتهام می شود. یعنی ترس از فقدان، اگر دیگری روزی تو را ترک کند، عشق تو تبدیل می شود به خصومت، یأس و یا اندوه شدید. در چشم بر هم زدنی عشق لطیف تو تبدیل می شود به حمله سبانه و, و یا غم شدید؟ پس عشق کجا رفته است؟ آیا عشق میتواند ظرف چند ثانیه به قطب مخالف خود تبدیل شود آیا آن احساس عشق حقیقی بوده است یا چنگ انداختن و آزمندی معتادانه احتیاض و جستجوی جامعیت چرا باید ما به دیگری معتاد شویم دلیل اینکه تجربه عشق رمانتیک یا احساساتی تا این اندازه هواخواه دارد این است که چنین عشقی ظاهراً هر دو طرف را از حالت ریشه احساس ترس، نیاز، کمبود و نقص که پاری از حالت روشناشودگی انسان است می رهاند عشق رمانتیک یا احساساتی دو سطح دارد سطح فیزیکی و سطح روانی در سطح فیزیکی تو جامعیت نداری و تمام نیستی و هرگز نخواهی بود تو یک مرد و یا یک زن هستی یعنی نیمی از کل در این سطح اشتیاق به کمال و جامعیت یعنی بازگشت به یگانگی خود را به صورت جاذبه جنس مخالف ظاهر می‌سازد. نیاز مرد به زن و نیاز زن به مرد میل به اتحاد با قطب انرژی متضاد خویش میلی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت این اشتیاق فیزیکی ریشه معنوی دارد اشتیاق خاتمه دادن به دوگانگی و بازگشت به حالت جامعیت و یگانگی محض اتحاد جنسی کوتاهترین راه برای تجربه این حالت در سطح فیزیکی است به همین دلیل است که اتحاد جنسی لذت بخش ترین تجربه ایست که قلمرو مادی بشر در اختیار انسان می گذارد. اما اتحاد جنسی چیزی بیش از درک لمحی زودگذر، گذر از جامعیت و کمال و اتحاد حقیقی نیست ای از رحمت اما دوگانگی را هرگز نمی توان در سطح صورت ها محف کرد این تجربه آتش اشتیاق تو را تیزتر کرده است اما تو هنوز خود را غرق در دریای وصال نمیبینی بنابر این پس از این تجربه دوباره خود را در بدن جدا از دیگران خیش میابی در سطح روانی احساس فقدان و عدم کمال از سطح فیزیکی شدیدتر است تا موقعی که خود را با ذهن خیش یکی انگاشته ای حوییت خود را از بیرون گرفتی. یعنی احساس اینکه چه کسی هستی از چیزهایی ناشی می شود که در نهایت هیچ ربطی به تو ندارند. نقش اجتماعی تو، دارایی های تو، ظاهر تو، موفقیت ها یا شکست های تو، باورهای تو و غیره. این خود دروغین و ساخته و پرداخته ذهن یعنی نفس، خود را شکننده می‌بیند، احساس ناامنی می کند و همواره به دنبال چیزی می گردد که خود را با آن یکی کند تا احساس بودن کند اما هیچ چیز یافت نمی شود که به او احساس کامیابی پایدار و وسال ببخشد ترسهای او باقی میمانند احساس فقدان و نیاز او از بین نمیروند آنگاه سر و کلهٔ عشق رومانتیک و احساساتی پیدا می‌شود. به نظر می‌رسد که این عشق می‌تواند پاسخی باشد به همه مسائل نفس و نیازهای او. حداقل در وهله اول چنین به نظر می‌رسد. همه چیزهایی که خاصگاه احساس تو از خود بودند، ظاهراً اهمیت خود را از دست می‌دهند. اکنون چیزی را یافته‌ایی که جانشین همه آنها می‌شود. این چیز به زندگی تو معنا می دهد. معنایی که با آن می توانی خود را تعریف کنی تو حالا دیگر پاره جدا افتاده در جهانی بیگانه و نااشنا نیستی حداقل چنین چونین به نظر می رسد جهان تو اکنون مرکزی پیدا کرده است معشوق تو در ابتدا برای چندان مهم نیست که معشوق تو در بیرون توست و بنابراین تو هنوز احساس خود را از بیرون میگیری آنچه برایت مهم است این است که احساس نهفته نقص ترس کمبود و ناکامی که ویژگی حالت نفسانی است دیگر وجود ندارند البته شاید هم وجود داشته باشند آیا آنها مف شدند یا اینکه در زیر لایی از خوشحالی‌های ظاهری پنهان شدند اگر در رابطه خود هم عشق را تجربه میکنی و هم ضد عشق را یعنی حمله خشونت عاطفی و غیره پس بدان که تو وابستگی نفسانی و اعتیاد به چنگ انداختن به کسی را با عشق عوضی ای. امکان ندارد در این لحظه یار خود را دوست بداری و در لحظه دیگر به او حمله کنی عشق حقیقی ضدی ندارد اگر عشق تو ضدی دارد پس عشق نیست، بلکه نیازی شدیدن نفسانیست به داشتن احساسی کاملتر و جرفتر از خود، نیازی که معشوق تو به طور موقت آن را برطرف می کند. این چیزی است که نفس آن را جانشین رئسگاری می کند و برای مدتی کوتاه رئسگاری نیز به نظر می رسد. اما بالاخره زمانی میرسد که یار تو دیگر نمیتواند چنان عمل کند که نیازهای تو یعنی نیازهای نفس تو ارضا شوند آنگاه احساس درد ترس رنج و کمبود که عناصر ذاتی آگاهی نفسانی هستند و تا این لحظه خود را پشت عشق رمانتیک پنهان کرده‌اند ناگهان دوباره آفتابی میشوند مانند موارد دیگر اعتیاط وقتی مواد برای مصرف آماده است احساس خوبی داری اما زمانی هم میرسد که مواد موجود نیست آنگاه احساسات دردناک کشندهتر از پیش ظاهر میشوند حالا احساس میکنی که یار تو مسبب این همه درد و رنج و بدبختی بوده است یعنی درد و رنج و بدبختی خود را به بیرون از خود فرافکنی میکنی و با تمام نیروی منفی خشونتی که در خود ذخیره ای به دیگری حمله میکنی. حمله تو ممکن است در و رنج نهفته در یار تو را تحریک کند و موجب ضد حمله او شود. در این مرحله نفس هنوز به طور ناخودآگاه امیدوار است که حملش موجب تغییر رفتار یار شود. و در رو رفتارهایی را برانگیزد تا بتواند با آنها درد و رنج و احساس کمبود خود را بپوشاند. هر اعتیادی ناشی از انکار و اجتناب ناخداگاه از رویارویی و گذر از دردها و رنجهای خود است. هر اعتیادی با درد و رنج آغاز می شود و با درد و رنج پایان می آبد. مهم نیست که به چه چیز معتاد هستی، الکل، غذا، مواد مخدر، داروهای مسکن و آرامبخش، و یا یک شخص تو از این چیزها و آدمها استفاده می کنی تا درد و رنج خود را بپوشانی. به همین دلیل وقتی حالت سرخوشی اولیه تمام می شود در رابطه خیش درد و رنج و احساس بدبختی بیشتری احساس می کنی. این چیزها علت درد و رنج و بدبختی تو نیستند این چیزها درد و رنج و بدبختی نهفته تو را آشکار می کنند. هر اعتیادی این گونه است هر اعتیادی به نقطه می رسد که دیگر نمیتواند تخدیر و نشعت کند آنگاه درد و رنج بیشتر به جانت چنگ می اندازد. به همین دلیل بسیاری از آدمها از لحظه حال فرار می کنند و رهایی را در آینده جستجو می کنند. اگر آنها توجه خود را به لحظه حال معطوف کنند، بیتردید نخستین چیزی را که مشاهده می کنند در رنجشان است و این چیزی است که آنها را میترساند. ای کاش اینان میدانستند که دستیابی به نیروی حضور در لحظه حال چه ساده است. نیرویی که گذشته را و رنجهای مانده بر از گذشته را محو می کند و توهم را میزداید. ای کاش اینان فقط میدانستند که تا چه اندازه به واقعیت خیش و به خدا نزدیکند اجتناب از رابطه به این دلیل که با چالشها و رنجهای رابطه مواجه نشوی نیز چاره کار نیست در هر حال درد و رنج در وجود تو هست شکست خوردن در رابطه بیش از شکست نخوردن در انزوا می تواند چشمان تو را باز کند اما اگر بتوانی حضور بیشتری را وارد عرصه تنهایی خود کنی بسیار خوب خواهد بود